بسم الله الرحمن الرحیم بامن خداوندی بی آنکه زامیتابون نهایت با هر آنچه در آسمان ها و زمین است خدا را به پاکی یاد میکند و او صاحب قدرت منی و بم حکمت است پادشاهی آسمان ها و زمین از آن پوش زنده می گرداند و میمیراند و او بر هر چیز تواناست هم اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر چیز داناست هم اوست که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش مستولی شد او آنچه را در زمین فرو می رود و آنچه را از آن خارج می شود و آنچه را از آسمان نازل می شود و آنچه را در آن بالا می رود به تمام و کمال می داند. و او با شماست هر جایی که باشید و خداوند به آن چی می کنید بیناست بادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه امور به با خدا باز می گردند شب را در روز داخل می و روز را در شب داخل می و او به آنچه در سینه ها است دانا می باشند. با خداوند و به پیامبر او ایمان و از آن مال و دارایی که شما را در مالکت آن خلیفه خود گردانیده است در راه خدا خرج کنید پس کسانی از شما که ایمان آوردند و در راه خدا خرج کردند برایشان مزدی بزرگی است و شما را چی شده است که با خدا ایمان نمی آورید یعنی چرا در راه خدا خرج نمی کنید در حالی که پیامبر شما را دعوت می کند که به پرولدگار خیش ایمان آری و باز واقعا از شما پیمان محکمی گرفته است اگر ایمان دارید او است که برای بنده خود آیات و زهر را می فرستند تا شما را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آرند و بیگمان خداوند به شما بسیار رووف و مهربان است و شما را چی شده است که در راه خداوند خرج نمی کنید حالان که میراث آسمانها و زمین از آن خداست کسانی از شما که پیش از فتح مکه خرج کردند و پیکار نمودند مساوی نیستند بلکه ایشان از کسانی که بعد از فتح مکه خرج کردند و جنگ نمودند بلند مرتبه ترند. و خداوند برای هر دو گروه وعده نیکوی داده است و خداوند به آن انجام میدهید آگاه است کیست آن که به خداوند قرض بدهد قرض نیکو؟ پس خداوند آن را چند برابر برای او اضافه می کند و علاوطن برای او پاداشی پرعرضش است یاد کن روزی را که مردان مسلمان و زنان مسلمان را می بینی که نورشان در جلوشان و اطرافشان می و برایشان گفته می شود باد بر شما امروز نصیب شما است که زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و در آن جاودانا به سر میبرید و این است همان پیروزی بزرگ روزی که مردان منافق و زنان منافق به مسلمانان میگویند ما را بگذارید تا از نور شما روشنایی بگیریم برای ایشان گفته می شود به پشت سر خود بازگردید و آنگاه روشنایی بجوید پس در میانشان دیواری گذارده می شود که دروازه دارد در درون آن سراسر رحمت است و بیرون آن در و شعزا آنها و مسلمانان صدا می کنند آیا ما با شما نبودیم؟ مسلمانان می گویند بله مگر شما خود را به هلاکت افکندید و در انتظار تباهی ما بودید و در وعده خداوند شک داشتید شما را آرزوهای غلط اغوا کرد تا انکه حکم خداوند فرا رسید و شیطان کار شما را در مورد لطف و رحمت خداوند فرید دارید. پس امروز نه از شما فدیه قبول می شود و نه هم از کافران. جای همه شما آتش است. همین آتش رفیق شایسته حال شماست و چی بد جای است؟ آیا برای مؤمنان وقت آن نرسیده است که دلهایشان به ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیش از این برایشان کتاب داده شده بود ولی چون زمانی طولانی بر آنها سپری شد دلهایشان سخت شد و بسیاری از ایشان بدکار است. بدانید که خداوند زمین را بعد از مردن آن زنده نگرداند بیگمان آیات خود را به شما بیان نمودیم تا باشد که بیان شدید بیگمان برای مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و کسانی که خداوند را قرض می دهند برایشان چند برابر مزدشان داده می شود و علاواتن برایشان پاداش گیرانی است و آنانی که به خداوند و پیامبران او ایمان آوردند هم ایشان نزد پروردگارشان صدیقان و, و شهداند ایشان راست قاداش اعمالشان و روشنایی ایمانشان و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنها اهل دوزخند. بدانید که زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی و تجمل پرستی و خودستایی در میان شما و افزون طلبی در اموال و اولاد چیزی نیست اماند بارانی که سبزه نبات آن زراعت پیشگان را به خوشی عجیبی فرو می برد و سپس خشک می شود بگونه ای که آن را زد شده می بینی و باز به با کاهی تبدیل می شود و در آخرت برای کافران عذاب شدید است و برای مؤمنان آمرزشی از جانب خدا و رضامندی است و زندگی دنیا جز متهای فریب چیزی نیست در راه رسیدن به آموزش پرودگار خیش و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان و زمین است مسابقه کنید بهشتی که برای کسانی آماده شده است که با خدا و پیامبرانی او ایمان آورده اند. این است فضل خداوند و هر کسی که بخواهد آن را می کند و خداوند صاحب فضل بزرگ است هیچ مصیبتی در زمین و در وجود شما رخ نمی مگر اینکه پیش از آنکه آن را بیافرینیم در کتاب بسط رسیده است بیگمان این کار برای خدا آسان است برای اینکه بر آنچه از دست میدهید دهید اندوهدین نشوید و به آنچه با شما عطا کرده است برای تکبر ورزیدن خوشحال نشوید و خداوند هیچ متکبر خودستایی را دوست نمیدارد آنانی که بخل میورزند و مردم را به بخل دستور میدهند و هرکی از راه خدا رو بگرداند پس بگمان خداوند هم اوست بی و ستوده واقعا پیامبران خود را با نشانرهای واضح فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان را نازل کردیم تا مردم به تأمین عدالت بپردازند و آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدید است و مناسبی برای مردم تا خداوند معلوم کند که چه کسی او و پیامبران او را در غیب یاری می کند حقا که خداوند توانا و, و صاحب قدرت است. ما نیست بگمان نوح و ابراهیم را فرستادیم و در دودمان ایشان نبوت و وحی را قرار دادیم پس بعضی از ایشان را یاب و بسیاری از ایشان بدکاره اند. سپس به تعقیب ایشان پیانبران خود را فرستادیم و بعدا ایسا و پسر مریم را فرستادیم و با او انجیل را دادیم و در قلب پیروان او شفقت و رحمت نهادیم و رهبانیتی که خود آن را اختراک کرده بودند ما آن را بر ایشان فرض نگردانیده بودیم مگر طلب خوشنودی خدا را ولی ایشان آن طوری که رعایت آن ایجاب می کرد آن را رعایت نکردند. با این هم ما به کسانی از ایشان که ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از ایشان بدکاره هست ای مؤمنان از خدا بترسید و به پیان او ایمان بیاورید تا خدا با شما دو برابر از رحمت خود را عطا کند و با شما نوری قرار دهد ده که با آن به راه مستقیم بروید و شما را بیاموزد و خداون بخشاینده دو و مهربان است تا اهل کتاب بدانند که قدرت بر تخصیص فضل خدا برای خود ندارند و بیگمان فضل کاملا به ید خداست به هر که بخواهد آن را میدهد و خدا صاحب فضلی بزرگ است